همین کسانند که گمراهی را به بهای هدایت خریدند. در نتیجه داد و ستدشان سودی به بار نیاورد و هدایت یافته نبودند.